ان دراللهم سيدنا رسول الله و آل ابينا که استاد در آخر کلماتشون ما را هم علی از قبل می‌دونم. از قبل دوستم داشت. اصلا از قبل می‌دونم. اصلا از قبل دوستم داشت. اصلا از قبل می‌دونم. اصلا از قبل دوستم داشت. اصلا از از قبل از قبل می‌دونم. مطلبی بود که از فرمیشون از صفحه 266 تا 269 از معهوم نایی نه رو فرموندن راجعه به لدوان فرس البته از کردم تقریبی رو که استاد ترموندن با آنسی که در کتاب رو خواد آمده فرم دارد بعد از این که دو تا اشکال کردم که دیروز خوندیم یک صفحه هم یک اشکال دیگری ایست که خلاصه روی مبنای ایشان مشکل میشه تماس به عام. از کنم که اونطور که در کتاب فوائد و اصول آمده خوب در قرارت بکنم ناینی نقطه اصافی اشکالشون وجه حجیت ظهور اشکالی که ناینی که اگر ما بنا بگذاریم که وجه حجیت ظهور کاشفیت از مراد متکلم. هست در بگوست در کبرای حجیت ظهور قیمه آیان اصولی این اختلافه که اصول هست ظهورات به چه مئیار حجیتیه و نقطه حجیت ظهورات چه یه اطلاعی که شاید مثلا کلمات شیخ هم در رسائل مشعبه به همانش به بحث بخص ظهورات در حجیت زن آورد. چون نقطه ای که حجیت زن آورده وچه حجیت ظهور رو زن به مراد متکلم حالا حده زن شخصی، حده زن نوعی زنه به مراد میشه صح اشکال کجا پیدا میشه اشکال اینه که در شریعت مقدسه مخصص و منفصله چون منفصله ما زن به مراد پیدا نمیشه ممکن بعد از از البته نهاییی در اون عبارتی که داره مطلب میذاره من به حال یا من درست متفهم نمیشم یا استاد چطور شده اونو نگاه هرینه یه اشکالی مبهم استاد داره میگم میشه جایی خود اون چیزی روشن نیست این یکی رو هم خیلی رو بكونه اشکالی مگه استاد نگفت که آن مراجعه کردن ناینی در حقیقت این اشکال به ناینی با اون تغریبی در سوال هست وارد نیست اشکال ناینی رو خوب دقت بکنین دو تا کلمه اگر معیار در حجیت سکول لنه به مراد باشه با منفصل بودن قرائن زنه و اونا توی نمیشه راست میگی شما اشفارش اینه که اگر بنا شد ارائن منفصل باشد تا دویت تا سیصد. خب شما پس با ایشون مه... این بحث رو نمیدونم بوشن شد براتون این بحث رو این گرفتن که ما حسارات ظهور اساسم رو از چه جهت خجهت بدونیم؟ سوال. مثلا من دیروز عرض کردن میساق و حلق. ولی ظاهر از فرم ادریه که ظهورات مفید قطع هستن نه زن تو او ما ها معروض مفید زن چون میساق و اقلایی سمون به این میساق و اقلایی قطع مردم زندگیشون با هم بحث زن و احتمال و فیال و اوهام تو زنیشون نمیگونه نه همون از با داشتی دردن همین به چیلی نمی کاره بعد دقیقه را. ما در عرفان هم بگیم آه کتاب بیان لباس بیان لباس خیدن در اون دکان چیلی نمی بحث زن هایی هر بارو مطرف رو دقت دقیقه نمی کاره یه روز فوضیه شدارن مرمونه اشکالش در حقیقت اینه که اگر ما معیار در اساط و ظهور رو زنه به مراد گرفتیم یک مخصص هم منفصل عام در کتاب آمده یا در سنت رسول الله چه خاصی جز امام صادق آمده پس ما چطور ذنبه مراد پیدا بکنه که این عام مراده ممکنه و لذات که در این اشکال ایشون موقعی به بنابراین مبنا شمازی بیان باز اشکال میکنه که روی این اشکالی که شما دارین میکنین باید بگیم اصلا مجمل نمیشه بهش مراجعه کرد ایشون هم همین حرفو میزنه خب خلاصه از ممنونایی اینه که فحن کافیه چرا؟ چون زن نمارا کلیه نمیشه؟ چون شما هر نقدار خواهرست بین چون احتمال داره قیل نمتاخر باشون دو توی هر سوز کنار ما ما الان مثلا فرسیم در مسئله مسئلهی روایت داریم از ما صادق حتی روایت زاهر میشینه که میگه تکمه هایم تو قبره بکنن اگه اگه دست به کپنه جدر اشکال نمیم بذارنش خوب مثلا قرص بکنن که زاهرین که بعد از قرص و بعد از تمام و امور یه روایت از امام رایت خیلی هم سریع نیست اجمالت بد نیست بگه پشت که اگر میت قصد دادو بشه اما ما روایت سریع سریع داریم که اگر میت قصد دادو بشه دیگر مسیح قصد نمیاده از امام جباد یا امام حادیه ها ما روایت امام رایت امام سادقه باست مقیده از امام حادیه ها خب این بحث اینه که كه... اگر ما مهیارladر اصاف دارم اون به بموراده با این همه قلید منفصل تو زنم مراد شد لذا ایشون در حقیقت اونی که من فهمیدم اونی که من فهمیدم ایشون محاید بگیم ما چون قائل به زنم مراد میسیم زنم مراد باشه فمس هم کافی نیست هر جنف هستون بازمون زنده داریم تو زنم مراد ببنیم زن نمیشه کافی باشه چون قرانه برخلاف آمده نمیشه با با اون علم اجمالید. این هم خلاصی نظر مرموم نایین پس نظر مرموم در این مسئله دوران مسئله رو دادن به زمن به مراد که آیا وجه هجیت چیه؟ بس. و جواب این مسئله یعنی اشکال این مسئله لزوم فرصم بردن روی علم اجمالی این خلاصه مباحثی که تا حالا اینجا مفرح شد مرموم استاد بردادیم که در علم اجمالی اشکالی تدن که اشکالشون خوندیم و جواب نایین هم گفتم و باید به جاب ناینی هم اشکال کردن در فرقه 269 این کافی که من نجفه ایشون دارن الهانا قدر و صدنا اله نتیجه و هیه انها ده لوجود هلتی ذکرت لوجود فست لایت مشه امنها این عدل مثلا زمه و مراد مثلا یا مثلا نقطه علم اجمالی یا چیز دیگه فصحی و فی المقام انیغار اون اینکه که دراز بر وجبه میکنه از حجت در موارد اصول عملی همون دلیل بر فخص در موارد اصول لفظی این هم بحثی که ما مطلب کردیم مطلب <تصفيق> <تصفيق> را آخری شام یکی یکیه یک دوتا نیست یک فخص یه دفعه در اثر فخص ما به یک دلیل میرسیم در اثر فخص به دلیل نمیرسیم به دلیل رسیدیم خب باز بزنید امار کنیم داره انسان اصول عمل و ان شاء الله توضیح میدم و این که نای میگه یک فص مثلا فص از مختصری از, از مانه این در حقیقت نظر اگر مرادش این مقدار باشه این روشن نیست این توروباد بگه ما بحث می کنیم اگر به دلیل رسیدیم خب توی اصول عملی جات میشید باشه به دلیل نرسیدیم ما چه اصول عملی است اگر این باشه هر اتفاقی نیفته دوستی، باشه ها بگن نتیجهش فراهم به دلیل رسیدیم به که آن نه. اگر عموم آم ثابت شد، اون دلیل میشه اساس اون دلیل میشه. و خب من صلوام ثابته مخصص دست مخصصم کافی عرض کردم که جمله از مواردی که الان شما اینو تخصیص میدین تخصیص عین یا می‌گذشتگیه این عین عین عدل که میگه شما در لباس حریر نماز نخون درسته ما را مخصص میگیریم همون در فقه شیعه این به عنوان مخصص بسریش از حضرت رضاعالی عقد کردم این اگه تمام دادیم تو جلد فقهی، الان ما تو جلد سال 200 که ما رضا تو اون جلد ازش مخصص نمی‌فهمی فقهای اون زمان. ازش می که حزر رضا در مسئله اجتماع هم نه به و الان ما از این من چون یه جرثه توضیح کافی اندردم که از این مواردی که الان از شما ازش تخصیص گذاشتید، اینها در واقع قواعد اصولی از جمع بین هذل تختیف اصطلاحی نیستند و امامزاد رامو با این مطلب امتناع را هم اصباد کرده. چون در اون زمان در جرب فقری در از سالهای پنجاه و شست و هفت داره بر اینجور و مفرق شد کار نماز شونان هم سنیه همشیه نه آفین که فیغمبر نحیه از حریر کردن اما نحیه از فلاز رحل نکردن این هم بحث اشتماع نه مثل نماز در داره در صحبه مقصوم از دهی از علمای اهلسالنه از بزرگانشون میگن که نماز باطله چون غالبه امتناه بودن از دهی نماز درسته چون اجتماعی بودن از پزرد رضا که اگر کسی در اون زمان دقیقه ما احلا اولمای ما تخصیص میکنند مثلا خود رو زینه نده کنند کنند کنند کل مسئله الا ما کنند حریر شون خود رو زینه اینه مثلا لباسه، مسئله نماز. نماز این طور گفتش شما در, لب... در نماز لباسه بوش مثلا نوروز اینه الان ما تخصیصیم بریم دقیقاً تخصیص <تصفح> این تخصیص حساب میمیشه این عبارتان اخواهی از مسئله اجتماع نی. نهیم چون توضیح زودش یکی تکار نه این دوازه شیز هفن کسی شده این نه من مشکله روزا مشکل. قبول کرده ما مقابل شده میکنم برای رفعیت مکنم خب یواشه هاش که خوب <تصفح> حالا نراه بگی یا ورشوچی دیدنیه که این مثلا شواهد و امثالوش میاد راست قبول من قبول مشکل وقتی ای که از وان و این قیاس است تا داره شوتو قیاسی این قیاسی میگه یعنی مثلا با خیلی حفه عجیبه قیاس بین هات یا منظره‌اش خب این مثلا مثلا این نوینی مرتضی نوشته معلوم کفای مرموت‌ها اساسی به این فن مرتضی داریم که این قیاس خیلی عجیبه گفتم حالا چطوری بده نگاه آدام چیزی شبیه اون اگر قیاس باشه ميا... ميا... ميا... با بعد استاد از راه دیگری وارد فهد میشن وارد بحث میشه میگن دو دلیل داره یکی حکمان عقله عقل ظالم ها که اون به شما هم وارد هم من توضیح کردن من حالا فعلا. یه مقداری بعضی و واسه در که من سلام نعلیکم الله عاده هنیچ جونش می‌مثلا تو آخر من آیا خویی می‌کنم بد مثال رو بخورم یکی ایشون دارن حکم ولع اقله دزدالیک این تعبیر یکی از اختلافات ما با آیا اونش لذیذه سلامیه آیا عقل و یا اولاره من دزد خوندم می‌خونم بر جه آیا خویی بالو برم یا حکم ولع اقله دزدالیک اقل حکم می‌کنه هیچوی نه وی استقلال دان لذیذات <تصفيق> <تصفيق> لیست از الا تشریح الاحران و ازها اظهار آقا علی مکللتین به طرق عادیه دیگه این چار پنس هست و به نیم اینجا نوشتن به طرق عادیه و مولا باید اعلام بکنه به طرق عادیه و لا یجول تصدیه لجمیع ما دهلو دهلون فرورتون بله بله و بعد بله کما یستقل و لعقل کما ان العقل یستقل و ان الوزی فصل این نماهی الفخص و انتکالیف المولا من صندوق همین افرادم بحث کردیم این صاحبان اگه بنامیش این حرف ها در برای از این رانش کده حقوق دومیا ترجیمه با مشکل رو برو یعنی این مسائلی که خیلی عادی و روشنه و در عرف جامعه ما وجود داره این را اولا عقلی گرفتن و مستقلات عقلی گرفتن و ثانیه تأکید در وظیفه عقل و مولا یعنی این ر يشونان يستغل العرب في وظيفة اخذ التكاليف من از التي تظهر اونا قبول نیست، نه، حاج حاج اون رو همون حرف بنده رو ممکنه بزنن. من چرا عرض کردم وظیفه مولا رو. اجازه بدین ما هم نمی‌فهمیم. اجازه بدین آقا ما هم نمی‌فهمیم. نه اون برای من امر اجازه بدین رابطه عبد مولا رو ما به عنوان فریق مشخص کنیم. نه بنا بنای اصول بشه. اشتباه میشه. اصلا خدمتتون که حالا می‌خواد اون رو ببنانم. رابطه عبدالمولا نمیشه زیر بنای اصول قراری خدا اصول زیر فقه. رابطه فقهی رابطه عبدالمولا طبق فتاوای فقهی تقیی میشه مولا چه وزیفی محلی. محلی محلی. این, محلی این مولویت محلی. به معنای عبدالمولای اطلاعی نیست این مولویت ممکنه اجاها دیگه هم باشه معذاله که هم باشه منافض نداشته دقیقه خدمت من ارزو کنم که مسته دیگه نمیخوام تکرار بکنم مرمومه استاد نوشتن به حکم عقل به اینکه که مولا باید اظهار بکنه عقل هم با سه سو. ما از کردیم این کلام رویشون من نمی کنم اولا ما این رو حکم عقل گرفتیم و سیره عقل گرفتیم نه حکم عقل مگر اینکه که از عقل اینجا جا عقل نظری باشه و عملی باشه که موازان قطعا همینه و فرق عقل عملی با سیره از فروغ زیاده یکیش اینه که عقل عملی تا اون خصوصیات و دقیق تشریص نبه حکم نمی کنه. اما در سیره و گاهی بعضی تصامه ها قبول میشه در بر احکام حقیق قبول ما معتقدیم به جای این تقریبی که ایشون گفتن میتونیم به این سیره بیاریم خوب دقت فکر آیا یک آیا هر قانونی به مجرد جد و تشریح الزام آوره یا به اصطلاح ما اصولی ها منجده جواب بنای اغلا این است که تشویق به مجردی نفسه الزام آور نباشه اون جداست. آیا اوغلا میتونن این کار رو بکنن؟ با نه جامعه سختی داره اما به هم نمیخواد مثلا جامعه کوچیکی باشه قوانین محدود باشه مشکل نداره. من توضیح دادم سابقا ان تو بحث دیگه میاد اون حق و تایی که ادعای مطرح کردن این اگر بخواد به اصول بیاستون حرف تایی این بخواد به وصول جت یک معناش اینه که بگیم تا مجلس تا پارلمانی قانون تصویب کرد به مجلسی تصدی تنجوزن میاد یک دو آیا غیر از این مثلا قانون وظیفه داره یه گوش دانه داره شهروندا مکلفین قانون رو ابلاغ بکنه امکان داره, داره؟ نه خب نه عقلی ازش محذور لازمیه خب عقلی نیست از این محذور اجتماعی هست نه و وزیفه خودش بزنه در خونه ها یکی یکی در گوش ها ابلاغ بکنه با که نه اون اولی شده نه دومی شده بنای و این عقل نیست سیره و در قوانین، الا جاهایی که یک اهمیت خاصی داره سیره و اقلات بر این جاری شده که مقنن یک غیر از تشریف یک کاری یعنی هم انجام بده شهرن به قول انوزی ها مکلف هم غیر از اطاعت اون هم باید یک کاری انجام بده یعنی باید مغنن یک حرکتی بکنه تا یک حدی مکلف حرکتمون حرکت نداره حدی اسم حد ما باشیم محرزی هم مثلا مغنن در وسائل ارتباط عمومی در رسانه جمعی او رو اعلام در معرض بشه مکلف هم تو خونه نشین تا رو برسه اون راه های بودن هست دولت هست قانون هست قاضی هست نه روزنامه رسمی دولت هست روزنامه مجلت هست اون راه های متعارف رو بره انجام بده اون حد معرضی هست حق حد جناب آقای مغنه همیزور که در قرآن آمازه لعنوه رکن بهی و من بلغ این من بلغه نه تنجید ما توسول روشیم تنجید برموم <تصفيق> استاد فرمده حکم عقل ما گفیم اغلا شاره هم همیزور که همه ببینیم لا انظركم بگنی در قرآن اصلا شما خیلی دیگه چه فراموند یعنی اعجازش چه انجام دار. احنا دار؟ احنا من هم مرجع انجام دادم و انجام دید بس نه من من من به اون با... نتیجه نتیجه ببینید نتیجه معیار مولویات ترتب احکام جزاییه اصلا فرق بین حکم مولوی و ارشادیه در احکام ارشادی درش عقوبتی خاصی مذهبی زمان یا ناینی زمان لاصوص سند بیابر مالایک الله لحمون نه دیگه اصلا نواس کنید عقوبت داره روزی شما شما جزا میتونید نه اون نواسون باسن شما درس خونی دوست من واینایی میگن اصلا لاصوص سند بیابر مالایک الله هم هیچ جنبه مولویتی نداره چی یعنی نداره. نداره. هر جا که احکام جزائی بود میشه هر جا که احکام قضایی نمون جری شد این لاصوص تلفیه بر مالای کله ما و رضا خودمون واسه این که نه واقعا هم شاید واقعا هم یک برابر انسان فی و بر مالای کله نماز بخونه دو حالت هم بکنه نماز درست بخونه شاید همون اولیش هم یک عقوبات مالی داشته باش نه میگی واسه اولویت نداره این میگه از ما واقعیه ما این هست ما گفتیم که ظاهر لفظ اولویت داشته باشه همین بزرگ یامات خودش موافقه باشه چرا خوندید کی گوره نماز باطل بوقید ناینه میگه فقط این مفادش بزنانه دقت بکنیم مفاد این کلام الان همین فکر تو حضای ما جاری و ساریه این رو ارشاد صرف میدونن یعنی هیچ جنبه مولویت نداره هیچ جنبه جزا در عبارات قدمانی نیست مثلا در عبارات قدمانی قضی قدمان قدمان. یحروم علی علی و سلیف این یحرومان مولویه فارق بین مولویت که آقای بزرگمار کنم در عبد مولو نیم خود عبد مولو. هر جا جزا بود میشه مولوی هر جا جزا نبود میشه ارشادی خیلی راحته معیار در مولویت وجود جزا وجود کیفر هست حالا اون من منبعه اعتبار و ولایت پدر باشه شوهر باشه دولت باشه قانون باشه منشه اعتبار از خدا باشه منشأ قدرت و منشأ جنب از خدا باشه یا به قول این امروزیان اصلا بعد از دوران رون سا سا رو بخوا. یک ما قرارداد اجتماعی باشه کتاب داروشون خصوصا از این اصلا قرارداد این قانون قرارداد اجتماعیه نظام اجتماعی قرارداد ما با هم چند قرارداد اینجوری زندگی کردیم این بحث بعد ها بین خود با قرییان محل بحث و خشکه او که من این قرارداد چیه هست به اصلا این اصلا حق این قرارداد ندارن شده آخر پس به جای این تعبیر ایشان، خب ما میگیم این تعبیر اولا عقل و بردن اوغلا سیره این سیره شده. و شارع هم همین سیره رو امضا کرده. لا انذرکم بیگی و من بلغ. پس درش بلو خرده. اسم بلوغ همون که ما میگیم علم تکلیس. علم تکلیس یعنی تجاوز، دقیقاً همین تعریف تجاوز. عارفين بعد از یک مقام مقام بیانه مقام انزال رسول انزال خود و ارسال رسوله در قرآن این مقام تعبیر میشه به انزال این اسمش مقام انزاله از خدم بعضی از ارسولی مثل در تحضیر رسولان جن اسمش باشه مقام فعیلیت خلافاً در مصطلح اینه مصطلح نایمی فعیلیت این کلمه فعیلیت در احکام به این اصطلاحات در بعد بود فعلیت ها اینه همین که خداوند رو دعاق تواصل پیغمبران بیان کرد شد فیلی. یک معنی فیلیت بیده اسم این اگه فیلیت باشه در قرآن اسمش در اصطلاحات ما ارسال رسول انزال کتبه در قرآن اسمش انزاله نویر و بشیر یه مرتبه پردی هم وصول و و مکلته که ما میگیم تنجیز تو وصول بشیم تنجز. این در تعبیر قرآنی بلقه لعنزه رکم بگیم من بلق روشن شد پس بنابراین این مطلبی که استاد فوزن در فلس مطلب درستیه لكن حکم عقل نیست سیره اوغلا و بنای اوغلا این چیزی نیست که عقلی باشه قابل تغییر نباشه در بعضی از جوامع میشه تغییر شده پس این پیشرفت علمی شده تو هر کونه تلویزیون هست هر قانونی که تو مجلس تصویب میشه همون لحظه به دانه‌دانه افراد ممکنه ابلاغ ممکن این مشکلی این چیز سختی یو بار بغلش واسه اینه که این مشکل نداریم. کما اینکه مثلا دولت بنا به الزامات شما باید هر روز تماس بگیریم با اطلاع عمومی مثلا مجلس ببین چه قانونی واسه. یه مشکل خیلی خاص یعنی نیم تورش تو حکم مردم استاد فروندن تو مثلا گاز بنزین احتمون افزایش ارتفاع نمیک شده نمیاد. یه بنای عملی فعلا گذاشتن چاره‌مون امضا کرده اون بنا که در مراسم مراحل قانونی در مراحل قانونی احکام جزائی مترتب میشه بر مرحله تنجز و بلوغ مرحله تنجز هم اینجوری حاصل میشه مولا وظیفه خودش رو به حد معرضیت برسوند مکلط هم عوض حرکت مکنم تا حد معرضیت نقطه طلاقی حد معرضیت خب ما, ما همینه گفتیم ما گفتیم که ممکن است یه در اون عربستان موقع شما یا در حجاز در اون زمان اصلا تفکر عبد مولا بود ما میگیم که اصلا زواهر قرآن همینطوره تفکر تفکر عبد مولاست لکن خواسته ریشه های قانون عوض کنه روز قانونی بیاره این خود این کار روز قانونیه لو بیه و, و ما ظالمونا و لاکن این کارو ها میابلیم. این و ماوراء اونارا این ریشه رو روحموناست چون تو کی هو در چه جایی ظلمون علالمولا و ما ظلممونند بله به ما ظلم نکردن الان فارق بین نظام عبدالمولا اینه که در نظام عبدالله به میگن چون اگر اساتید موناکی ظلم کردیم اهانت کردیم در نظام اجتماعی میگن نه تو تو ظلم ظلم ببین تفکر ماشین مفصل بس تفکر و ریشه ها شیشه های قانونیه نبود در عربستان متارض درست این من قبول دارم تا ریشه رو قرآن ادعا کرده همون ریشه ای که در دینه فقط فرقش اینه دینا بلند گفتن اون با قرارداد استفاده درستش کنون میگه نوابه داره صدایی نمالیه الله این بحث با ولایت الهی خب بشه این بحثی میخوام بگم طب یک بحثی رو مرحوم استاد حمره این بحث ایشان درسته ببخشید این مرحوم از اصل خودش رو قهر علی دیه علی عملی مراجعه شدم. ببین همین نمیگه قضیه اینه که از... محال میشه، خدا بهش محال میشه. شما از روش ریاضی نیستش که این نظری نیست، اما خب کلاف امکان نداره که فرض باشه. اون میشه تو جامعه میشه. خب 20 ما وقتی میگه نمیگه نمیشه محال نمیشه بدیه اگر عقل پس نکرده. نظری نظر ایشون نظر ایشون میفهمه نظر ایشون خود من ای نظر درست یا نه من بگم درست شیعه عقلی هر چیزی عقلی هر اینه عقل او مبنای همون حکم عقل همون چه بنده ها توش باشه فهمیدشین فروبام ندارم عقلاب ما هم عقلا همون احکام عقل پیاده میکنه اما عقل چون دقیقه میگه تاجهش ظلم شد عقلا نمیخواد دقت عقل اون به بسا... حساب میراثندی عقل حساب بکنه. این عقلا میگن این به طور کلی ما ممکن است رو در نظر نگیریم همین اختلال نظام در ازدیقون کافی باشه. همین که کار جامعه به سهولت بگذره همین کافی باشه. نمیخواد ظلم باشه. ما اگر بگیم در بوش مکلف درستو یا مکلف به دو دنبال تو واقعا سخته. نمیخواد ظلم باشه. فرق بین سیره‌ی عقل الا اساسش عقل هست. بگم اصالت سیری اوغله اما در سیری اوغله ای گوی اوغاس محذور یک محضور میگن جامعه باید آرامش و آسایش داشته باشه دقت می‌کنی سیری اوغله ای اون ظرافت ها و دقت چون عقل تا موضوعش هم احراز کنه چون اقسام عقلیه به قول بعضی منتقهای منتق از اپوزیتیو اسم قولی تقریباش اینجوریه بهش میگن اینجوری قضاای تکراری اصطلاح قضاای تکراری اینه که محول عین موضوعه یعنی شما هیون خاطر این قضاای تکراری میگن ببینید این در حیقل احکام و عقلی از این قبیله یعنی این در حقیقت باید احراز بشه ظلمه. ظلم ظلمی که شد اون خوب هم باشه در سیر و عقلایه دنبال این مقدار احراز همچنین مسخالی نیست ممکن است معیار در نظر بگیرن سهولت جامعه تحصیل در جامعه آرامش برای جامعه آسایش اختلال نظام ندونه دنبال این مقدار نیست دنبال آسای آ... اون دنبال چیه؟ دنبال ق اون کماه دنبال ظرم ا دنبال اون انابین آمد. د فروزید. پس بنابراین یک به نظر ما این حکم اوقلات و لضا ممکن از در یک عفی فهم بکنه عها با همدیگه فهم بکنه جامعه ها با همدیگه فهم بکنه. اما به طور کلی جامعه یا اوقلایی برای اینه همین مب به که هم درست. هم قانونگذار باید به حد معرضیت داسته. هم مکلف باز به حد معرضیت کرد این اسمش فحصه، اون اسمش انزاره کار قانونگذار رو میبین انزار کار <gaming> مکلف این فحث هر دو یه حرکتی باید انجام بدن تا به هم برسن وقت اگر مکلف به حد معرضیت رسید و ندید اون مخنوبت رو سو بحملی هست این وجه اولی که مردم استاد هم اصطاعتم درست هم یادگیری منقدر فاصله دید و در میشه خب میگم این تقریبا عمومی بود یعنی این یک بحث کبروی دیگر داره تو بحث خبر وارد اما جا دارم هم دارن علما ما دارن تو بحث خبرو شیخو که پایلو دیگه دارن خاطرش این که سیروه خلاص امضا رو در کیفیت امضای سیروه بالای چجوریه سیریه مو میخواد چون از مو با دست میشه بشاره اما سیریه واقعا امزانی این تقریبا سی واقعا شما همین امضا دادن هم راست راهش چیه من دیگه وارد اون ما اون مروغا راهش اینه است که سیر اوغلاییه حتی به نظر ما حتی زورت لازم نیست سیر اوغلایی میکنه سیر اوغلاییه بعضیاش خیلی عمومیه بعضیاش ممکنه به طرحی گفتم خیلی عمومیه. در جامعه هست و علمی هم هست و وظیفه اصلی شاره هم هست اگر بخواد شاره در اونجا خلاف سری اغلا راهی را انجام بده قائلتا باید تنسیل بکنه. قائلتا اینطور یعنی جاهایی هست که عدم رض رد امزاهه خلاصه هست امید که پایم داره عدم و رد امزاهه این در همه جا نیست اینو من قبول دارم مثلا نزور خب اصل اولی من از که نزور باطل باشه شاره نزور رو امضا کن لیکن محدودش کرد چون جاهلی نهت برای بوت کردن، الان اون خیلی محدود برای قیل خدا نعزم کنن شاره افرام ماکانه من نظرن لله ففه به امضاشه، این انصافاً امضا کن اما وضعه این سیره و که فهض است و قانون است و نظام است این چنین سیرهی عادتاً دیگه عدم و ردش کافیه همین چون مولا رد نکنه یعنی که مولا راجع ناکنه خودش امضاست، احتیاج به امضای دیگر نداره. این راجبی. آدمو راست ساعت سه واهی یا اینکه ممکنه همون نحوه هم سیه دیگه. سیه چیه؟ فرم نسخه درم نسخه مییره. وجه اول آیه خویی درسته؟ البته آیه خویی یک بحث دیگری هست. دیگه ناینی هم مطرح کردم که من یه هم خسته شدم که این بحثی طولانی شد اشاره هم کردم خاسته ده به علل جمله فعل عقل کم از تقل و به وجوب نظری بحثی هست که یه عالمه کتور کلامی که من دارم این باب ها رایش داره تا آیا وجوب نظر عقلی است که معتزله به امامیه یا یا شرعی است منو این وجوب فسته اینجا مسئله وجوب نظر در اصل شریعت این شما چه نظر ما باید بگردیم چه مکتبی صحیح چه دینی چه مذهبی چه پس چه روششی تهیه چه جهان بینی تهی ما نظر بکنیم این پیغمبر بر ع اون میگه من چینم راست میگه راست میگه بعد از اینکه ایمان بیا آی هم آوردیم بازم فرم به همون نظره به همون نقطه است. این روشن نیست یا تون با صی بودیم من اصلکن شبید این هم در بار آن ما داریم یا یهننا تو برل الله ما یک توبه یا عام داریم این اشتباه. میشن. یه توبهه هم بعد از ارتکاب تباائر داریم. و لذات بعد از توقار توبهه نمیخواد انتشتن بود کوار ماتون هم نکفاند اون سریعاف. اون توبه عام اون به اقلله اون تکلیف نده اونس تکیفش علانه. اون تو اعللا ار جوایی، اون ایمان مطل ایمان ان. اما اینی که اگر گناه کرد طوربهه بکنه این یک ویفه از ها می بین نه. یعنی که از تکالیف شما اینه است که اگر خدای نکه دقیقی و اترین جزو کباله رو باید به کنیم واجب توبه این دیگه از اون توبه این یک حکم فرعیه اون یک حکم اصلیه من روماه خوبی بنامه اینجا رو هر داری که شدیه همون این نیستن هم. اینطور یک مثال زمگ روش شکل بکنیم چون دیگه اصل توبه بیشون اونم اصل روشو به خود نه اینو توبه نه چون به نسو یعنی از خالص خالص باشه تمام وجودت به خدا بگی. میدونم ب... می چیزی ندارم البته میتونم توبه کنم ام. اونجا اما یه توبه هم وظیفه خوب دقت بکن. یعنی که از وظایف انسان که اگر کبیره انجام داد دروغ گفت یا زیاد کرد به واسطه توبه هم بکنه از طرف الله حدیث بوده. چون دی قامت خدا اون هیچ چون مقام بده دقیقاً فرمودید نهول یوان علا قیلان و نه یوان باشه یه چیزی یوان علی یوان از این این دو تا از یک باب نیستند چونه نمی‌تنن بشینن سیگارا بعد دیگه باشه وقتی احسن دلیل دومی رو که حالا اجازه دلیل دومی رو که مردم استاد آورده برای وجود فلس آیات و روایات آیات مثل فصل و اهل ذکر این گفتم لا تعلمون اما این آیه موردش در اصل ایمان به نبوته در شروع نیست یا مضافن که ما روایات زیاد داریم که فصل اهل ذکر خصوص اهل بیت می‌خوانند تمسکش فلولا نفر من کل فرقت من هم تا این تمثلی درسته این آیه درسته و غیرها من ال آیات ایشون آیات در روایات و اما ثانیه که روایات باشه سمنها قولو علیه السلام انالله تعالی یقوی لعبدی یوم القيامه هلا عمل فقال ما علم فقال هلا تعلم نقل و و غیرها من ال روایات الان روایات به این موضوع تو ذهن من میذاره آ اینجوری برادرن خودشون مراجعه فمن یاد نمیاد این آیه مبارکه این رواست مبارکه اولا روایت واحده هست روایات میگه یک سنه یک رواست واحده بیشتر نیست در ذیل آیه مبارکه بدر الله الحجتون بالغه در ذیل اون آیه میگه خالصن به مثلا برهان یا سرای دیگه مراجعه کنن در ذیل آیه بدر الله الحجتون بالغه ما حجت بالغه به این تفسیر شده خودی که در ضمن اون بالغه دیگه تفسیر شده خداوند از ریان چرا عمل نکردیم یه گوشه خونه دا نشستم از صاحب دراجی کردم ما به قول ما نمی‌دونسن جاهل بودن سایه قال له حلا این یعنی وظیفه تو فحص و چرا فحص نگیدی این حجت بالغه است یعنی خداوند متعال مطالب رو به حد بلوغ رسونده در طرف و این کوتاهی طرفه هر کدم روایت واحده و الان تو ذهنم میاد ببین مضمون جواب دیگری باشه اونجوری که من می‌گم و اون هم ضعیف و سنده مرسله این رو وزیر اکیشون آوردن به عنوان شاهد این نیست. و به نظر ما مهمترین وجه همون دور دو, دو آیه خوبیه و که مطلب از او بهتر لانده رو کن بگیمان بلغه به همین معنی که ارز کردن و این مطلب مطلب و است جای بحث و جای شبهه نداره. یه بحث دیگه هم ایشون داره هم مرموهای ناینی که مقدار چقدره، فهم جفت این هم برایشون مفتن نتاهایت دا چون دادن که آن خودشون دیگه مراجعه بله سوره لغمان با تنجا به این حجت ظاهری عرم بله 20 بیست سوره لغمان که بعد هم روایت داریم حجت ظاهری عرم هست اینجا کنه؟ که نمیتونه خواهی زاید بایده آیه نه زين اية بيس سور نه حالا از یک مطلبی هم آی خوی بعد در آخر فرمودن بر صاحب کفایت کلام کلاما حاصله انه ما الكتاب است شده به معناها كانت فی معرض التخصیص فالمقدار اللازم الفرح و ما یخ به یخرج ما به یخرج معرضیه لا بعد ایشون فهمید بغیر اختیارتی نارو خویشتال در آمد ما افاده ولا یرجد ظاهر لا معنا موحسن چون ایشون رو به خود کتاب و سنت دادن یعنی کتاب و سنت در معرض تخصیص هم. شما فرض تو این کلیه کتاب و سنت در معرض تخصیص دروش پای خو اینجوری معناکنه باشه من احتمال میدم یالا چون احتمال دیگه شاید نظری که خویشتون داشتید مراجعه کنم همون معرضیت است که من عرض کردم احتمال داره بله شاید نمیشه این باقیه شد یک مطلبی و ذهن بوده لرا تبیره کمه با سره شدیشون بگه آف از بین نمیره هر جون افیده چیز کتابتون همه یک ما بیهی یک من اعتقاده این یک روچ رو نه احضار صاحب نه شاید صاحب کفایی نه احضار رویشون کرد احتمال میدن صاحب کفایی شاید مرادش معرضیت هم معرضی که من هست اگر اون معنی باشه بد نیست اگر مرادش این نه فهض بکن تا خودش معرضیت برسه مراد اینه فحص نه کتاب نه کتاب و سنده از معرضیت بیوسته اون معرض معرضی از کردم مراد مراد جدی شده اون بوده و الا ظاهر عبارت خیلی منسجر و الله و محمد. این تو آخر بحث آیاتونی فردا ان شاء الله از اول بحث اینجا خلاصه نظر به قدونی مطلب الله محمد و آل محمد